الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله, الله, الله. الله, الله. بر کام دشمن ما ورا انهر افتیدا ظلم و ستم بلای مرد و خونی شهیدانش چو دریا جاری گردیده از عشقی خون آمی زیزن خالا لروییده از عشقی خون آمی زیزن خالا لروییده الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله توفیق بده یارب که تا غیرت با جوش آید قلبی جوانانی خبر رفته به آید فریاد محبوسان زینددان ها ب گوش آید، Shahidi shahadat bar hama gon khosh o khosh oyat shahidi shahadat bar hama gon khosh o allah yo allah allah yo allah allah ya allah allah ya allah, allah, ya allah.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 بحری خدا خیزید الله یا الله الله یا الله الله یا الله یا الله یا الله،, یا الله برخیز که جست و شعری میدانی نبرکست نیست. Juz mi allah chukmi, haq chukmi, digar kas nis Dar rauhi u jaan ba abas ham nis Labba ik bi govoo ser bi dehkin kari har kas nis bi har kas Allah الله یا الله الله یا الله الله یا الله. الله, الله ای دوست چرا غافل شدی از دین و ایمان در یاد نیاوردی گذشته گانینت نامد لرزون شده در پیش دشمن پا بود داستانت Ay barholat, bar barjonat, ay barholat, bar barjonat, ay vaye bar halat, ay vaye bar jana. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.